درس قوائد فقه سیاسه و الحکومت جلسه 43-21-1401 معصه آموزشالی حوزوی امام روزان علیه السلام گروه فقه سیاست ادامه قوائد تقدیم اهم و مهم در بحث تضاهم مساله با مساله بسم الله الرحمن الرحمن حال الله رب العالمین و صلی اللہ علیه سیدنا و نبینا محمد و علیه احلویت تاهرین المسومی سیام و الله فی الارضی روحی برباح العالمین له فدا با تحکل بر خدای متعال و تحسل به پیانبر گرامی و احلویت ادخار علیکم السلام بحثمون رو بازم کنم در بحثی که داشتیم داشتیم مجموعه قوائد مربوط به اهم و مهم رو تکمیل می و اون دسته اولی که مربوط به تضاهم مسالح با مسالح بود خب این دسته رو چند موردشو است کردیم از این باب که معمولاً این بس جایی خوب طرح نمیشه حداقل این دسته بندیش ممکنه برای بحث تکمیلی و اثبات هر کدوم از اینا ما نمونه خیلی بیشتری بخوایم ولی یه مقداری حداقل این که خود این دسته بندی ها رو پر رنگ بکنیم اناوین قواعد که در لابلای مباحث پر رنگ اینا برجسته بکنیم در اصحان شریف بزرگواران بعضی از این موارد هست اما خب به صورت مستقل معمولا کسی کار نمی بعضی از فقه های اهل سنت بعضی از موارد بیشتر دارن به اختزاء روی کرت خاص خودشون ما هم در لابلای مباحثمون طبیعتاً مباحث مربوط به این رو شما طبیعتاً سراخ دارید ولی اونها بیش از ما میپردازن و در صورتی که نیاز حاکمیت ما به این قسمت خیلی زیاد هست و باید طبیعتاً اینها رو توصیه بدیم در بحث مواردی که خدمت شما کنیم به مساله با مساله برمیگرده این چند مورد رو در بحث تقدیم قواعد مربوط به ترجیح زمانی رو من دو مورد رو عرض کردم ترجیح زمان یک مسئله بر مصلحت زمان مصلحت دیگه یه مورد دیگه تقدیم مصلحت دائمی بر مصلحت موقت بود دو مورد دیگه هم میشه مطرح بکنیم تقدیم در واقع مسلحت فوری بر مسلحت متراخی و در واقع مسلحت که تاخیر پذیره در واقع مواردی هست که تاخیر نمی پذیره و طبیعتاً باید به صورت فوری انجام بگیره خب اینو خود شما سراغ دارید برحال کارهایی که فوت میشه در واقع این قاعده مبتنی برای اینه که بعضی از موارد در واقع بر ضرورت در واقع تأمین مساله است که اگر زمان اون بگذره در واقع خود مسلحت امکان کامین نداره و امکان اجرای شدنش از بین میره. خب این با که به انتفاع به تعبیر دیگه به انتفاع مصلحت برمیگرده. اگر ما اون مصلحت رو تقدیم نکنیم قدمه تقدیمه چون این مسلحتی مختزی این که اویه که ممکنه از بین نره اما این از بین میره و به انتفاع اون مسلحت برمیگرده بنابراین این اقتزاش چون اینه اقتزای در واقع ماهویه اون مسلحت از حیث زمانی مختزیم در واقع تقدیم اون خواهد بود و ما در واقع تعلیلش رو به این داریم برمیگردانیم و مستند ما در واقع به ماهیت اون مورد برمیگرده خب شبیه این رو تقدیم مسلحت مزيع بر واجب مطلق اینا این میوقعه شبیه اینه یا واجب مزيع بر واجب مطلق به معنا میشه بگیم که این مصلحت فوری ممکنه بگیم از مصادیق اینه حالا فوری فوری بودن به در واقع مزيع بودن اقسام مختلفی داره مزيع میتونه در همون آن اول باشه که میشه فوری در واقع تضییق در اولین زمان خب این میشه فوری اما تضییق در زمانهای بعد هم مهمه ما میدانیم زمانش مثلا ما الان در زمان صبح هستیم میدانیم که در ساعت یک مثلا آفتاب قراره بگیره ماه مثلا در ساعت فلان قراره بگیره نسبت به اون زمان فوریت داره اما از قبل ما میدانیم در واقع این رو باید یک قسم از واجب فوری رو از مصادیق واجب مزیق بگیریم مسلحت مزیق بگیریم خب مستندش در واقع به همون صورته واجب مطلقم در واقع اینجا یا مصلحت مطلق میتوانه در واقع به مسابه مفهوم سانوی برای مصلحت در واقع زماندار تلقی بشه ببخشید زن غیر زماندار و واجب غیر موقت و متراخی تلقی بشه اه، اه خب این هم پس یکی پس وچه تقدیم این اینه که در واقع ماهیت این واجب مزیق و واجب فوری که یکی از مسادق اونه چون این اختزایی داره لذا وجه جمع این این هست خب یه نکته دیگه هم که میشه بگیم در واقع مستند و وجه این قاعده میدهانه یکیش این باشه که اقتضای خود اون لحاظ میشه یکیش هم این که حالا شما این مسلحت متراخی رو اگه تحلیل کنید این یک مسلحته مسلحت تخیر پذیره مسلحته در واقع خاصیست که میتوانیم اون و با فوری جمع کنیم به تعبیر دیگه مستند دوم چیه اینی که قاعده کلی الجمع و محمو امکن اولامنت ترک در واقع اینجا به این صورت اختزای خاصی داره اختزای قاعده کلی الجمع محمو امکن حالا تو این رو ما در فضای در عالم تراهم لحاظ بکنیم با عالم ثبوت کار نداریم این مستند دومه اون مستند یک چی بود اینکه اقتضاشه اینم اینجا در واقع داره میگه اگر شما در واقع اگر واجب فوری تقدیم بشه در واقع تقدیم واجب مزیق و واجب فوری مختزی در واقع امکان جمع بین دو مسلحت یا دو واجب خواهد بود. لذا اینطور نیست که یکی بگیم از بین بره یکیش از بین نره چون که یکیش وقت داره. یکیش وقت مزیقی داره در هر دو صورت ما میتوانیم در صورتی که تقدیم واجب فوری بکنیم اون یکی مثلت هم امکانه تحقیقش هست در واقع تقدیم یکی باعث از بین رفتن اون میشه اینو مستند یک بود خود این از این زاویه هم قابل است. خب یک مصلحت ای هم داریم که به زمان برمیگرده این که بگیم حالا بعضی‌ها لای لای بحثشون مطرح می‌کنن و اون اینکه تقدیم در واقع مصلحت فعل مزیت بر قضا فائت این مبتنی بر اینه که در واقع مفهوم قضا فائد در واقع به چه صورت چه اختزایی داره مفهوم قضا واجب شونده اینه که نشان میده امکان جبران اون هست مختزی امکان پذیری جبران مسلحت فایده هست اما داره میگه که شما این رو در یک طرف غیر مزیق یکی مزیق شما میگه که مثلا اونجایی که مزیقه یک یک واجبی داریم در واقع نکته کلی تقدیم مصلحت جبران ناپذیر بر بر مصلحت جبران پذیر ولو اینکه فوت بشه در صورت فوت اون مساله شما میخواید یکی رو مقدم کنید میگید که آقا یک مصلحت درسته از بین میره اون مسلحت هم از بین میره ولی ماهیت اینها یه اختزای داره در واقع بر مقایسه با دونو مصلحت موردی که امکان جبران اون هست بر موردی که جبران ناپذیره مقدم میشه خب این نکته الان یه بحث مطلقیه ولی در بحث زمانیات این مورد در موارد زمان بردار در واقع میگیم در موارد زمانی قابل تطبیق بر مواردی است که ازیق از زمانی برخوردارند دارند پس این از این جهت این رو می توانیم این مورد این مصداق از زمره مباحث و موارد زمانیات و تضامهمهای زمانی تلقی میشه چرا چون که اون زیق زمانی به تعبیر دیگه زیق زمانی با جبران پذیری یا ناپذیری مساله نزدیک شده و قرابت پیدا کرده خب در این صورت شما میاد میگید که یکیش مقدمه این در لابلای مباحث بعضی اشاره کردن که دوستان مستن صدا یه جوری نمید دارم مشکل چیه سم برکار دوستان یکی yeah, از دوستان مثل صدا رو آن لابای نوریزو اتقافش کنیم با لابای نوریزو شاید هم بخواستن از ما سوال بپرسن اگر از ما سوال بپرسن فهمانمون داری صوت در یه جا تکرار شد اگر من سوته های رو فعال کردم. اگه فرمایشی دارید بفرمایید ولی بحث لنظر خیلی شکتر و خیلی زمان کمتر اینجوری میگیره و بعد خیلی راحتر دولا میره چون آلا ما چند تا مثلا بحث دیدیم و این ها دوست اینا تشکر هم خود استاد میشه هم دوستان رسانی بخته درسی روی اینقدر چیز روی این نیشه نمیرسیم کل این بخص رو انجام بدیم. خب تذکر خیلی خوبیه من خوش تذکر جناب این نوروزی تذکر نوروزی است از این باب که ما بعد تمرکز رو اون داشته باشه ولی من یک تذکر مقدماتی اول بحث ارث کردم و اون اینکه ما طبیعتاً الان خیلی مجال پیدا نمی کنیم همه اینا رو می‌خوایم مستند به اون صورت تفصیلی کنیم با ادله‌ی مقداری تاکیدمون بر تبیینه و به این صورت هم معمولاً چون کسی بحث نکرده یه مقداری من بعدم نمیام اون های غیر مستقر رو اشاره بکنیم یه کمی بیشترشون در مقام طبیعی و از این جهد ارفنگاهی قد به هر حال به اینا ما ای تزاهم میگیم و این که ما تذکر بدیم به خودمون بگیم این تزا تزاهم بدویست و غیر بدوی این خودش اهمیت داره در واقع اشاره به تزاهم های بدوی و تفکی که اونها از تزاهم های مستقر مفیده در این حد لذا موعلان بیشتر چون که در مقام تبیین این موارد هستیم عرض می خب حالا الان تذکرمون از چه جهت بود تو این مورد می خواستیم کنیم که لا به مباحث در فضای جدید این را من عرض کنم که یک مفهومی که ما به کار می‌بریم تقدیم اهم و مهمه در فضای اهل سنت این تعبیر به عنوان فقه موازنات معمولاً یاد میشه تو این دو سه دهه اخیرم خیلی پرداختن اول جسم هست در اهل سنت زیاد می‌پردازن و یکی هم در منابع متعدد بهش پرداخته شده کسانی که مثال های زیادی میرن از قدیمی ها مفصلتن مثال ها رو شما در کتاب های عزددین ابن عبدالسلام پیدا میکنه جلسه قبرم عرض کردم مرحوم شهیده اولونم هم بهش نظر دارم یک کتاب قواهد کبرا داره که من چاعت حدود چند ماه روزانه بابر از دوستان و مورور انتقادی میکردم برای دوستان خب باز جلد یکش هم تمام نشد یک سوم وم جلد یکش تمام شد از سه جلد خدمه شو هست خیلی مثال داره البته دسته بندی اینا قابل ارتقا هست دستبندی جدید و معمولا اکثر کتاب های معاصر در فقه مقاصد و فقه موازنات و فقه اولویات هم نزدیکن مثال ها رو از اون زیاد میارن از ابن تیمی هم خیلی مثال میارن چون مجموعه نوشته هاش به شده فراوان مجموعه طول یه مجموعه طول داره خیلی چندین جلد. و در خلاف این که برای ما تلقی هست که همبلی ها گراش عقلی کلا ندارند این تو عقل ورزی خاصی دارند از جمله موارد مهمش در همین بحث فقه اهم و مهمه و جنبه کاربردیش هم در سیاست شرعیه زیاد به کار میره سیاست شرعیه با زاویه بحث مقا... این تقدیم اهم و مهم و موازنه مساله و مفاسد لذا ما این مواردی که ذکر میشه من خیلی تلاش کردم از چندین سال قرم اینا دستواندی منقع رو و اینا بعضی در وقت از همین مستقره بعضیش غیر مستقر الان از این زاویه تقدیم مثلت فعل مزیق بر قضا فائط رو داشتیم ارزم کردیم اینجا می توانه بسیگی مصداق داره که در واقع این جبران پذیری و جبران ناپذیری چگونه است به عنوان یکی از اولویات این رو مطرح کردن طبیعتاً لابلای فرمایش فقه ها هم هم این بحث مزیق و غیر مزیق آمده اینجا الان بحثش سر اینه که اون فرمایشی که داشتن جنب آقای نروزی به اون بحث قبلی میخورد که الجم و مهم و امکن اولام رو اگه میخواید لحاظ کنید پس در واقع در دیگه نباید بیارید این که ما واجب موزیق و واجب فوری رو بیایم بگیم که آقا بر اون یکی هم مقدمه نگید ولی در مقام کاربرد و آموزش مکلفان در واقع این یه بحث مهمیه که ما باید تذکر بدیم خیلی موقع بهش توجه نمی کنن در واقع به رقم پذیرش در واقع این دوگانگی تمایز میان و تزاحم های بدوی و و مستقر گاه تشخیص مصداق اونها برای مکلفان مورد حداقل نیازمند چه هست اشاره و تنبیه چون که بعضی مسائل ریز میشه و حداقل اون بحث رو مباد بیاریم فوقش اشاره میکنیم که اینها در, واقع در حد یک تذکر که اینها مستقرده اما این بحث فعل مزیق و قضا فائط رو در نظر داشته باشیم اینجا داخل پرانتز یه تذکر دیگه ام کنم در اون مرجحات خمسی که قبلا نشاره کردیم در کتابه اصول که بعضیا در بحث تعادل تراجیح آخر اصول میارن بین نتظامتها روز مرجحات تظام رو میارن بعضیان در بحث بعض زد میارن این دو جای اصول خیلی این دو تا بحث بعض بعضی ها اینجا و اونجا میارن دل لابی لای بحث این مورد خمس رو نخت مختلفی میکنن که بعضیشون میگن آقا این مورد اون یکی برمیگرده به ویژه به اهم مهم خود اهم و مهم بقیل دست چار مورد دیگه قرار میگیره یکی از مواردی که قبلا اشاره وار صحبت کردیم بحث چیه؟ اون موارد زمانیه اینجا شبیه این مود قلط مورد حاضر رو به زاویه بحث های ما داریم در واقع، صحبت این میشه که آقا اگر واجب یکیست موزیقه یکیش غیر موزیقه پس اصلا چرا میگی تزاهمه بعضی بزرگان در بحث اصول همین و وارد میکنن که میگن آقا اصلا همین شما چرا اصلا میگید این تضاهمه اصلا برخی اصولیون اون چون این مواردی رو در تلاش کردن از زمره مرجحات اصولی تضاهم خارج معرفی کردن و و به دیگران و به علمای دیگر نقد زدند که, که چرا اصلا شما این موارد رو ذکر کردید خب این یه بحث خاصیه پس این نقد رو محدود نبینید این از باب تذکر و تذکر خیلی خوبی بود به ویژه از این زاویه که در واقع اونجا شما یکی از هایی که بعضی‌ها میارن بعضیم نمیارن اینه. خب یکی از موارد پس ما الان چند مورد زمانی مطرح کردیم. یه تعبیر دیگه هم بعضی‌ها به کار بردن، گفتن مثلا تقدیم اقدم بر قدیم. اینم یک مورد حالا بستگی به جاش داره که تقدیم مسلحت اقدام بر قدیم این چگونه هست؟ در واقع همون نکته ایه که البته ما یه تعبیر به کار بکفتیم ما مسلحت فوری که فوری بر اون یکی یا اقدمه یا مثلا یه جایی ما قبلا تعبیر دیگه که به کار بردیم ترجیه اسرع و زمانن یعنی یکیش جلوتره یا اقرب و زمانن یا یه مواردی هم ابعد و زمانن این هم خلاصه عملا به اون مواردی که برمی گرده که تقدیم زمانیه ولی هر زمانی ویژگی داره یعنی اینطوریه که باید بگیم مطلقا زمان اقدم تناسب نداره هر چند در یکی از اون مرجحات پنجگانه که عرض کردیم در فعل واجب تقدیم در واقع بگیم اونی که اقدمه زمانش جلو تقدیم اقدم بر سایر واجبات و مساله از چه جهته؟ این مستندش اینه که شما میگید آقا این الان زمانش رسیده و هنوز زمانش نرسیده پس یکیش درست واجب الهی اما یکیش تنجز پیدا کرده واجب و مصلحت مقدم به خاطر رسیدن زمان تنجز پیدا کرده اما واجب بعدی و از جهت زمانی واجب متأخر یا حالا بازه ممکن اگر مراد از قدیم این باشه الان ذهنم نمیاد قدیم آیا همین مراد یا نم اما واجب متأخر هنوز زمانش نرسیده نرسیدن زمان واجب ولی اینکه اون واجبه مقتضی عدم جز اونه به ما میگن که آه این واجب اول روکت اول الان واجب بود شما اگر یک قدرت داری برای ایستادن شما همون روکت اول نماز رو ایستاده بخوان نگه نداره برای روکت دوم اگر رو بر یک روز روز قدرت داری همون روز اول رو شما واجب انجام بده حالا خودمونی و عرفیش کنی میگه آقا فعلا این واجبه آمد افتاده افتاد و مردی حالا این واجبه الان زنده بعد بعدان خدا یا خدا میگی ممنون خدا کریمه پس نکتش چی از جهت اصولی در اینه که شما میگید که این زمانش رسیده تنجز پیدا کرده خب اینجا هم یه تذکر داره اون تذکر چیه؟ این که برخی بزرگان تقدیم اقدم و زمانن رو زیر سوال بردن جهیت این مورد رو قبول نکردند چرا چون که فرمودن به خاطر اینکه ممکنه اون یکی اهم باشه به خاطر دخالت دادن مورد معیار اهم و مهم چون که تو اون اصولی خاطرتون هستی اما پشت همه ایار که گفتیم مرجع سرم چارم چی بود؟ اهم و مهم بود اقدم و اسبق رو اسبقیت زمانی رو خلاصه این رو نپذیرفتن چرا؟ گفتن بستگی داره به تعبیر دیگه برخی از موارد متأخر اهمیت بیشتری داره از این جد این رو زیر سوال بردم ولی نکته مستندش چی بود اون؟ اون مستندش این بود که اون تنجز پیدا کرده و بعضی هم ممکنه بگن فعیلیت پیدا کرده خب واجب بود هر دو واجب بود اما این الان زودتر رسیده مختزی عدم فعلیت به طبق مبانی یا عدم تندجز اونه خب از اون طرف پس اگر ما بگیم که یه زمانی ممکنه متأخر باشه ولی اهمیتش بیشتر باشه پس معلوم میشه برخی زمان ها اهمیتش بیشتره خب این مخت... چه اختزایی داره این که در این صورت ما نیاز به تعیین مساله زمانی در واقع بگیم زمانهای اهم داریم خب میعار اهم بودن زمان عملا برمیگردانه بس رو به سایر موارد این به دیم است که با میعارهای دیگر باید اهمیت یک زمان رو معلوم کرد. تو فارسی بفهوم اهمیت رو یعنی مهم بودن ما میگیریم تو عربی اگر بخواییم بگیم اهمیت یعنی اهم بودن جنبه ما اهمیت رو یعنی مهم بودن مهمیت اگر برفض بخوایم جلس واجب کنیم باید بگیم مهمیت ولی تو عربی اهمیت که گفتیم یعنی اهم بودن خب پس این تر... یه جاهایی ترجیح از زمانن یه جای ترجیح اقرب و زمانن، یه جای مختزیه ترجیح عباد و زماننه یا نه عباد نباشه زمان خاص بنابراین بعد معیار رو معلوم کرد بر اساس معیارهای مربوط به تعین اهمیت زمان میتوان گفت که کدام زمان اهمیتش بیشتره مثالی که من قبلا زدم بد نیست خوبه شما علا مثلا ماشین میخواد در تابستان پارک کنید میخوای وقتی که آمدید ماشین خنک باشه ماشین رو صبح دارید پارک میکنید ولی جلوی آفتاب میذارید که بعد از ظهر که برمیگردید اونجا سایه افتاده باشه پس اون زمان بعد از ظهر مهمه اگر تو زمستان باشه شما می‌ذارید تو جای سرد که بعد از ظهر که آمدید اونجا گرم باشه خب بلعکس میشه پس اختزائیه در واقع با, برگ با برگشت اهم معیار اهمیت به سایر موارد زمان مثلا در واقع معیار بودن خود رو به صورت اساسی از دست میده و به معیارهای دیگر عملاً باز میگرده و ما دیگه نباید رو اون مانوف بدیم مگر در موارد خاص چنان که حال در مواردی که خاصه خاصی که شریعت زمان خاصی رو ترجیح داده طبیعتا شناخت زمان اهم و زمان مهم یا زمان غیر مهم ساده تر خواهد بود دیگه دوچار ما مشکل نیستیم خب اینم پس تکمله برای اون محیارای زمانی ممکنه شما باز بگردید دخالت زمان رو بیشتر براش مصداخ پیدا کنید خب بعضی از موارد دیگهی که ما به ای این موارد برمیخوریم گفتیم تذکر دادیم بعضیش سیقه تعبیری بعضیش نه سیقه تعبیری نیستند و ما میتوانیم اونا رو مستقل حساب کنیم بعضیش هم جنبه آمتری دارن یکی از تعبیری که به کار میبرن میتوانیم قاعده مستقل باشه قاعده اعلی تقدیم علا اعتبارن علا علا اقل اعتبارن البته این رو اگر اگر این قاعده به تقدیم اهم و نوعن و اهم و برگرده اهم و یا اهم و نوعن برگرده خب بحث مستقلی نداره و تبدیل به سیغه تعبیری خواهد بود بلکه صرفا یک تعبیر و سیغه تعبیری برای یکی از اون دو قاعده خواهد بود من حالا یادم نیست انام تردید کردم که فرموش کردم اون قاعده ی تقدیم نو رو چقدر برجسته کردیم طبیعتا تو اون بحث عبدال مجید سوسوان یه مقداری توضیح دادیم اما این خودش بحث مستقلیست به این صورت عرض میکنم پس بهتر بعضی از این موارد رو ما یه بحث خاصتری براش داشته باشیم اون چی بود؟ ای که در همه جا ما داریم اگر فکر میکنم شاید در اونجایی که بحث اهداف رو هم ارز کردین در بحث جنوب احمد جنوب استاد یوسفی اونجا هم شد حالا اگر تکرار بود میفرمایت من ارز میکنم فشورده تر ارز کنم ای اگر فکر استراحت دوست دقیقهی داشته باشیم دوستانم سوال اگر دارن در خدمتیم الحمدلله اللہ